سرگرمی تازه یک آدم بیکار ولیچانیناف وحشت زده پرسید مگر بیمارید؟ درشکر نگاه خواهم داشت دستور خواهم داد آب بیاورند دختر نگاهی سوزان و سرزنش بار به او کرد و ناگهان با صدای بریده بریده گفت مرا کجا میبرید؟ لیزا این خانواده خانواده خوبی هستند الان در ویلای بسیار زیبایی سکونت دارند بچه های زیادی آنجا هستند. تو را دوست خواهند داشت. آنها خوبند. نسبت به من متغیر نشو. من خوبی تو را می خواهم. اگر آنهایی که ورچانی نفرا می در این لحظه می توانستند او را ببینند چیز عجیبی به نظرشان می آمد. چطور ممکن است؟ چطور شما می توانید؟ آه، چقدر شما بدزاد هستید. کشک سیل مانند گلویش را می فشرد. نگاه های زیبا و خشمگین خود را به روی ولچنیوف خیره ساخته بود. لیزا من دخترک دست های کوچکش را به هم میمادید ولچینوف کاملا حواسش پرت شده بود. لیزا عزیز، اگر میدانستی که مرا چه اندازه امید کرده اید؟ لیزا با صدایی محکم پرسید راست است که او فردا میآید راست است راست است راست است من پی او خواهم رفت و خودم او را خواهم آورد لیزا در حالی که چشمانش را به زیر بود زیر لب گفت دروغ گوید مگر تو را دوست ندارد لیزا مرا دوست ندارد به تو بدی کرده است آره لیزا با قیافه ای گرفته به او نگاه کرد و خاموش شد. دوباره سرش را برگردانید و با لجاجت چشمانش را به زیر افكند ولچانینف سعی میکرد دخترک را قانع کند. با حرارت صحبت میکرد او نیز دوچاره تب شده بود لیزا با کینوبی اعتمادی گوش میداد اما گوش میداد دقتش ولچانینف را دلگرمی میداد حتی شروع کرد برایش توضیح بدهد که یک آدم مشروبخوار چگونه مردی است می گفت پدرش را دوست می دارد و می مواظبش باشد و بالاخره چشمانش را بلند کرد و او را با دقت نگریست. ولچانی باز هم برایش تعریف کرد که سابقاً با مادرش آشنا بوده و دریافت که این گفته هایش دقت طفل را جلب کرده است. کم کم دخترک به سؤالاتش جواب داد اما با احتیاط و کلمه به کلمه و با گوش و کنایه با وجود این به سوالات مهم او جواب نمیداد درباره هر سوالی که به روابط او با پدرش بستگی داشت با لجاجت مهر خموشی بر دهان میگذاشت وقتی حرف میزد ولچنیوف دست کوچکش را در دست گرفته بود و آن را رها نمیکرد او هم دستش را بیرون نمیکشید با وجود این دخترک همیشه ساکت نبود گاهی جوابهایی مبهم از دهانش می پرید. با این واسه که لال گفته‌هاش فهمیده می‌شد که قبلن پدرش را بیش از مادرش دوست می‌داشت زیرا پدرش هم او را بیشتر دوست می‌داشته است و مادرش در لحظه مرگ هنگامی که همه این مردم از اتاق بیرون رفته بودند و دو نفری تنها شده بودند او را بسیار بوسیده و بوده است و اکنون او پدرش را بیش از همه چیز دوست دارد بیش از همه چیز در عالم و هر شب هم این دوستی افزون می‌شود اما راستی طفل بزرگ منشی بود. وقتی فهمید زیاد حرف زده است، دوباره در سکوت امیغی فرو رفت. حتی نگاه کینامیزی به ولچانی کرد که او را این اندازه به حرف زدن واداشته بود است. در پایان این مسافرت، عصبانیتش تقریبا تسکین یافته بود. اما بیشتر به فکر فرو رفته بود. خاموش، همچون یک درخت بیبر، با خیر سری و حالتی گرفته به جلوی خیش نظر دوخته بود. گویا این فکر که او را به منزل ناشناسی میبرند به منزلی که هرگز نرفته بوده است در همان آن کمی او را ناراحت کرده بود. چیز دیگر که او را آزار میداد و ولچانیو فهمیده بود این بود. حد میزد که برای دخترک ننگ است که پدرش به این آسانی او را رها کند و با مرد غریبی روانه کند. مثل اینکه او را در آغوش بیگانه ای باشد باشه. ولچنیو فکر می کرد مریض است، شاید هم خیلی سخت او را آزاردند آخ، ای شرابخار ای موجود پست من حالا رفتار و کردار او را درک می کنم چی را به تند رفتن با می داشت به آن ملک ییلاقی خیلی اهمیت می داد. هوای صاف، با بچه ها زندگی تازه ناشناس و سپس در آنچه که بعدا واقع خواهد شد دیگر هیچ شکی نداشت آتیه درخشان و پر از امید بود به یک چیز کاملا یقین داشت آنچه را که در این لحظه حس می کرد هنوز درک نکرده بود و می دانست که این وضع پایدار خواهد بود با هیجان جان می اندیشید مطلوب این است این است زندگی افکار پراکنده از مغزش می گذشت. اما آنها را موش کافی نمیکرد و با سرسختی از جزئیات پرهیز میکرد جزئیات هر چیز روشن و همه چیز پا بر جا بود نقشه اصلیاش را در نظر مجسم کرد و در حالی که تمام قوایش را جمع کرده بود می میشود این آدم کثیف را قفل گیر کرد او لیزار ابتدا برای مدتی نزد پاگرللسف ها خواهد گذاشت بعد هم خودش سر بنیز خواهد شد خواهد رفت آن وقت لیزا برای من خواهد ماند دیگر تمام است و مگر من بیش از این چه میخواهم و حتما خود او هم همین را می کند و الا برای چه با وی می میکرد بالاخره رسیدند ملک پگورلسف راستی زیبا بود یک دسته اطفال پر سر و صدا روی پلکان جلوی امارت هجوم آوردند و برای ملاقات آنها دویدند خیلی وقت بود که ورچانیوف به اینجا نیامده بود و شادی بچه ها بی اندازه بود. او را دوست می داشتند قبل این از اینکه از درش که پایین بیاید، اطفال بزرگتر شروع به فریاد کردند. راستی محاکمه، محاکمهتان به کجا کشید؟ اطفال کوچک خندان و فریادکنان دست جمع این جمله را بر زبان راندند. در آنجا راجب محاکمش سر به سر او گذاشتند اما همین که لیزا را دیدند، احاتش کردند و فوراً با کنجکاوی بی سر و صدا و دقیقه بچگانه او را ورانداز کردند. کلاف دیا با شوهرش رسیدند و آنها نیز کلمه اولشان راجب محاکمه او بود. کلاف دیا پتروفنا زنی و هفت ساده بسیار قوی و گندمگون بود. قیافه شاداب داشت. هنوز زیبا بود. شوهرش پنجاه و, پنج و پنج سال داشت. باهوش، زیرک و مخصوصاً آدم بسیار خوبی بود. ولچانینوف در منزل آنها حس می کرد که در کانون خانوادگی خودش است خودش اینطور تصیف توصیف می کرد. در باطن امر واقعی مخصوصی پنهان بود بیست سال قبل کلافدیا دیپتروونا می با ولچانینوف که در آن موقع دانشجوی ورگردی بیش نبود ازدواج کرده باشد این اولین عشق سوزان و مسخره و زیبای آنها بود این حادثه با ازدواج کلاو دیپتروونا و پگرلتسف خاتمه یافت پنج سال بعد آنها دوباره به هم برخوردند و دوستی آرام و بیالایش میانشان ایجاد شد پیوستگی آنها یک نوع مهر و محبت و روشنایی مخصوصی در برداشت که قلب آنها را درخشان می کرد و آنها این محبت را برای همیشه نگهداری کردند در خاطرات ولچانینوف این قضیه واقعی بیالایش و سرزنش بود و شاید هم چون که این حادثه عاشقانه برای او حادث بی همتا بود به این اندازه برایش قدر و قیمت داشت او اینجا در این خانواده ساده، راستگو و مهربان میشد. بچه ها را سرگرم می کرد. خود نمایی نمیکرد ترش رو نمیشد خا را میفهمید و صادقانه اقرار میکرد. چندین بار برای پوگارلسف ها قسم خورده بود که مدتی دیگر خواهد آمد و مستقیما نزد آنها خواهد و دیگر هرگز از آنها جدا نخواهد شد و راستی بسیار جدی به این موضوع می آنچه آنچرا که شایسته بود آنها از لیزا بدانند با شرح کامل جزئیات برایشان بیان کرد ولی این توضیحات بیفایده بود تنها یک درخواست از جانب او کافی بود کلاف دیابتروونا دخترک یتیم را در آغوش گرفت و قول داد آنچرا که در قدرت دارد برای او انجام دهد بچه ها دست لیزا را گرفتند و برای بازی او را در باغ بردند. بعد از نیم ساعت صحبت پر هیجان بلند شد و برای رفتن اجازه خواست. بی به اندازه بود که همه آن را درک میکردند. همه متعجب بودند سه هفته می شد که غیبت کرده بود و حالا پس از نیم ساعت میخواست برود. او خندید و وعده داد که فردا برگردند. به او خاطر نشان ساختند که حالش ابدا سرجا نیست. و او ناگهان دست های کلافدییا را در دست گرفت و به این بهانه که فراموش کرده است، مطلب بسیار مهمی را بگوید او را به اتاق مجاور برد را که برای شما برای شما تنها درباره سالی که در شهر ته گذرانده هم حکایت کرده و حتی شوهر شما هم از آن خبر ندارد یادتان هست درست به خاطر ندارم شما راجع به آن بارها با من صحبت کرده اید من حرف نمیزدم. برای شما شما یه تنها اقرار میکردم. هرگز اسم این زن را برای شما اشکار نکرده بودم. او خانم ترساتسکایا زن همین ترسوتسکی است. او مرده است. ولیزا ایزا دختر من است. کلاف پتروفنا که بسیار منقلب شده بود گفت. در این باره مطمئن هستید؟ اشتباه نمی کنید؟ فرچانینوف با حیجان جواب داد. از این موضوع کاملا مطمئنم کاملا و با وجود این که عجله داشت و دست خوش حیجان مخوفی شده بود آنطور که می توانست برایش همه چیز را تعریف کرد کلاودیا پتروفنا از پیش در جریان قضیه بود اما اسم آن زن را نمیدانست تنها این فکر که ممکن است یکی از آشنایانش روزی خانم ترسوتسکای را ملاقات کند و بفهمد که ولچانینوف این زن را تا این حد دوست داشته است همیشه او را به قدری متوحش می کرد که تا امروز جرأت نکرده بود حتی به کلاف دیا پترونا تنها دوستش اسم این زن را فاش کند پس از اینکه داستانش را گوش کرد پرسید پدرش چیزی نمی داند؟ با شرارت ادامه داد؟ چرا می داند؟ و آنچه که مرا آزار می دهد این است که کاملاً آن را به روی من نیاورده است می دانید این مطلب را دیروز و امروز صبح درک کردم؟ اما آن چرا که او اینن می داند باید من هم بدانم به همین علت است که حالا عجله دارم امشب پیش من خواهد آمد با وجود این تردید دارم از کجا میتود می میخواهم بگویم همه چیز را بداند از آنچه که مربوط به باگ است آگاه است در این باره هیچ تردیدی نیست اما از من خودتان بهتر میدانید که در این گونه مواقع چگونه زنها بلدن شوهرهای خود را مطمئن کنند اگر حتی فرشتی از آسمان نازل شود شوهر به او اطمینان ندارد اما حرف زنش را باور می کند سر خود را تکان ندهید. در من قضاوت نکنید من خودم درباره خودم قضاوت کردم و الان مدت هاست که خودم را محکوم کردم مدت هاست. گوش می دهید؟ لحظه پیش در منزلش کاملا یقین کرده بودم که همه چیز را می داند و من خودم را در برابر او رسوا کردم این را باور کنید. برایم قمنگیز و خجلت ها که دیروز این طور با بی از او پذیرایی کردم بعد همه را با جزئیات برای تا خواهم گفت میلی مقاومت ناپذیر او را به خانه من کشانیده بود تا به من بفهماند از لکه که به شرافتش وارد شده است آگاه است و حتی از اسمان شخص هم آگاه است این هست تنها علت آنکه با چنان حالت مستی خانه من آمد اما از طرف او این کار بسیار عادی بود. آشکار آمده بود که مرا خجلت زده کند. به طور کلی من در این کار دیروز و امروز با بی‌احتیاطی و گیجی بسیار حرارت به خرج دادم. من خودم خودم را لو دادم. برای چه هنگامی که من در چنان آشفتگی به سر می بردم او آمد. باید به شما بگویم که او حتی لیزا را این کودک را هم آزار می‌داده است. محاکان برای اینکه او را مسئول کند و حتی برای اینکه کینه و خشمش را به سر تفلی خالی کند. بله، الان زخمی شده است. هرچند که این مسئله هیچ ارزشی ندارد، اما زخمی شده است و زخمش هم بسیار شدید است. مسلما حالا مسخری بیش نیست، هرچند که سابقا آن که باید و برایش ممکن بوده است، قیافه یک انسان را داشت. واقع طبیعی نیست که او خود را به گردا فسق و فساد انداخته باشد. دوست من به همه این چیزها باید با دیده یک نفر مسیحی نگریست می دانید عزیزم دوست مهربانم من می رفتارم را نسبت به او کاملا تغییر بدهم میخواهم با او با ملاحظ رفتار کنم و این رفتار از طرف من کار خوبی خواهد بود زیرا با وجود همه اینها من نسبت به او مقصرم. گوش بدهید چیز دیگری هم به شما بگویم روزی در شهرته ناگه هم به چهار هزار روبل احتیاج پیدا کردم و او بی هیچ رسیدی فوراً آن را به من داد و از ته دل خوشبخت بود که توانسته است به من خدمتی بکند و من آن وقت این پول را گرفتم آن را از دست او پذیرفتم من از او پول قرض کردم خوب میفهمید؟ از او مثل یک دوست پول قرض کردم کلاودیا پتروونا که مسترب شده بود به او تذکر داد فقط خیلی مواظب باشید چقدر به هیجان آمده اید. راستی به خاطر شما نگرانم مسلماً اکنو لیزا دختر من است اما در تمام این وقایه چه بسیار نکاتی است که هنوز باید درباره آنها تصمیم گرفت و مخصوصاً احتیاط کنید هنگامی که خود را خوشبخت میابید یا زیاد به هیجان آمده اید بایستی با احتیاط بیشتری رفتار کنید با لبخندی افزود. هنگامی که خود را خوشبخت میابید بسیار سیار پرواز می‌شوید همه برای ما شایعه بیرون آمدند بچه ها لیزا را که با آنها در باغ بازی میکرد با خود آوردند. بایستی گفت که اکنون با ناراحتی بیشتری به او نگاه میکردند تا لحظه ورودش. هنگامی که با باولچنینوف خداحافظی میکردند، او لیزا را در برابر همه در آغوش گرفت و با حرارت وعده‌ای را که داده بود تکرار کرد و گفت فردا با پدرش برمیگردد. لیزا متوهم شد. تا آخرین لحظه او خاموش مانده بود و باولچنینوف را نگریسته بود. اما ناگهان لیزا استینش را گرفت و او را به کناری کشید و با نگاه التماس آمیز خود به او خیره شد میخواست چیزی به او بگوید بلافاصله فاصله او را به اتاق نزدیکی برد با لحن ملایم و دلگرم از او پرسید چی لیزا؟ اما لیزا مرتب به پشت سر خود نگاه میکرد و ولچانی را به گوشهی کشید میخواست هیچ کس او را نبیند خب چیه لیزا چی لیزا ساکت بود و نمیخواست حرف بزند. بی حرکت، های آبی‌اش را به ولچنینوف دوخت و تمام خطهای صورت کوچکش جز یک وحشت دیوانه چیز دیگری را نشان نمی‌دادند. مانند اینکه هزیان میگوید زیر لب گفت: او خودش را به دار می‌زند. ولچنینوف وحشت زده پرسید: کی خودش را به دار می‌زند؟ او او آن شب می‌خواست تناب را به گردنش گره بزند. دخترک تند و آن حرف میزد. من خودم او را دیدم آن شب او میخواست تنها به گردنش گره بزند او آنها به من گفت قبلن هم می خواست این کار را بکند او همیشه می بکند من آن شب او را دیدم بلچانی با استراب زمزمه کرد نباید اینطور باشد ناگهان لیزا خود را روی او انداخت و دستهایش را بوسید میگریست. هق هقه گریه او را خفه می کرد. از او خواهش میکرد، تماس میکرد اما ولچالینوف از لکنت زبان ممسوعانهش چیزی نمیفهمید. ولچالینوف هرگز نتوانست این نگاه آزاردهنده طفلی را که شکن جدیده است فراموش کند. در خواب و بیداری، او این نگاه های دیوان وحشت زده را که با امیدواری کامل به او خیره شده بود میدید. هنگامی که با بی دیوانه دیوان کننده به پترزبورگ برمیگشت با رشک و حسد میاندیشی. آیا ممکن است که لیزا تا این حد او را دوست داشته باشد؟ کمی پیش لیزا خودش گفته بود که مادرش را بیشتر دوست می داشته است شاید از او بدش می شاید ابدا او را دوست ندارد این چه معنی می او خودش را به دار می زند. چه می خواست بگوید؟ خودش را به دار بزند او این احمق حیوان می بدانم فقط می‌خواهم بدانم آیا باید به همه اینها خاتمه داد بدون اندیشه باید خاتمه داد